افسان اخسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا سلام و درود بر شما همراهان شبکه رادیو جوان افسانه‌ها ها بی تاریخ و بی زمانند. علاقه و عشق به شنیدن افسانه وقت سگویی در طول تاریخ تمدن با آدمی همراه بوده و در واقع افسانه‌ها عمری به قدمت انسان دارند افسانی از برادران گریم براتون نقل میکنم به نام ارباب و پسرک یتیم برگرفته از کتاب بهترین افسانه های دنیا با ترجمه از هروس شبانی روزی روزگاری در زمانهای قدیم پسر فقیری بود که پدر و مادرش را از دست داده بود به همین دلیل حاکم شهر حکم کرده بود که پسر رو به یه خانواده کشاورز ثروتمند بسپرن تا با سرپرستی اونا بزرگ بشه و هیچ وقت گرسته نمونه اما این زن و شوهر خلق خوی خیلی بدی داشتن با وجودی که ثروتمند بودن خیلی خسیص و بدذات بودن و اصلا چشم نداشتن که ببینن کسی از نونشون میخوره بنابراین پسرک ای ما هر چقدر هم که زحمت میکشید قضای ناچیز و کتک بسیار نصیبش میشد. روزی از روزها مرد خانواده به پسرک گفت آهای پسر ما داریم میریم مهمونی خوب حواستو جمع کن و مواظب به مرغ و خروس ها باش اگه یکی از اونا کم یا گم بشه وای به حال و احوالت و بعد به همراه زنش از خونه رفتن بیرون به سرک که از صبح مشغول انجام کارهای مختلف خونه بود یک گوشه نشست و چشم دوخت به مرغا و خروس ها. اما چند دقیقه بعد از شدت خستگی چشاش سنگین شد و خوابش برد و یه دفعه با سر و صدا مرغ و خروسا از خواب پرید و دید که یه باز شکاری در حال پروازه و یه مرغ چاق و چله رو به چنگال گرفته. پسرک با دستباچگی سعی کرد کاری کنه ولی باز شکاری پرواز کنن دور و دورتر شد. پسرک با عصبانیت گفت پرندی لعنتی اون جواب ارباب و زنش رو چی بدم؟ و بعد سعی کرد راخ حلی برای توجیه این موضوع پیدا کنه اما هرچه فکر کرد عقلش به جایی نرسید و با ترس و نگرانی منتظر بازگشت ارباب و زنش بود چند ساعت بعد ارباب و زنش خوشحال و سرحال از مهمونی برگشتند ارباب فریاد زد آی پسر کدوم جهنم دارهای هستی زن ارباب قرولندکنان گفت شرط میبندم این پسره کودن رفته پی بازی و سرگرمی خودش ارباب دوباره فریاد زد میگم کدوم گوری رفتی پسر با ترس و لرز خودش رو نمایان کرد و جلو رفت و بعد من من گفت اه اه ارباب اه من منو ببخشید سلام ارباب باور کنید راست میگم اصلا تقصیر من نبود یه دفعه هنوز حرف پسرک تموم نشده بود که ارباب با خش گفت جون بکن بگو ببینم چه دستگلی به آب دادی بی بیارزگ کودن پسرک سرش رو پایین انداخت و سکوت کرد واقعا نمیونست چی بگه زن ارباب چشم و به پسرک رفت و گفت لال که نیستی جواب اربابت رو بده بگو ببینم چه خرابکاری کردی ها بتنی و بعد با عصبانیت اضافه کرد همش تقصیر اون قاضی لعنتیه که این پسره یه دست پادچلفتی رو انداخته به جونم ارباب گفت بالاخره میگی چی شده یا بکوبم توی اون چلهی بیعقلت پسرک با لکنت زبان گفت من من, من من فقط چند دقیقه خوابم برد که یه دفعه زن فریاد کشیدی گفت یه دفعه چی ها حتما میخوایی بگی نکنه بلایی سر مرگ و خروس های نازنینمون آوردی ها ارباب با خش پرسید حتما میخوایی بگی شغال اومد و مرگ و خروس های زبون بستر و خورد پسر بتونی گفت اون, اون اون شغال نبود نه نه عرباب فریاد کشید اون؟ اون چیه؟ و زن عرباب فریاد زد وای خدای من وای خدای من دزدومت کنه ما اون وقت این پسر یه کابالود راحت سرش رو گذاشته زمین و تمرکیته ارباب لگدی به پسر رکز زده گفت پسر یه بیارزی تنه لش گرفتی خابیدی ها؟ فکر نکردی ممکنه برای خونه و مال منال ما اتفاقی بیفته؟ و زن عرباب هم اضافه کرد مگه ما این زندگی رو از سر راه آوردیم بابت به دست آوردنش کلی زحمت کشیدیم پسرک اک به گفت نه نه نه نه اشتباه نکنین دوز نایمده زن عرباب با عصبانیت گفت پس بود. پسر دل به دریا زد و تند و یه نفس گفت یه باز شگاری اومد و اون مرغ چاق چله رو با خودش پرد همین با شنیدن این حرف زن و شوهر ریختن سر پسرک و اونو به باد کتک گرفتن و اونقدر اون بیچاره رو زدن که تا چند روز نمیتونست از جاش تکون بخوره بیچاره پسرک افثانه ما چند روزی گذشت حال پسر کمی بهتر شد زن ارباب به سراغ پسر اومد و با تحکم گفت تا چی میخوای استراحت کنی و واسه خودت بخوابی؟ ها؟ خوب گوشاتو و باز کم ببین چی میگم از امروز باید مواظب به جوجه های کوچلوی من باشی خودت میدونی که من قصدورم اونا رو چاق چله کنم و برا شب اید پاک به قیمت گرونی بفروشم و بعد اضافه کرد این رو هم بهت بگم که از حالا روی پول تک تک این جوجه ها حساب باز کردم پس چهار چشمی موازه به اونا باش وگرنه دیگه هم، حق نداری برای یه. یه لحظه هم اینجا بمونی و نون مفت بخوری زن ارباب اینو گفت و رفت خونه همسایه تا کمی با زن همسایه که لنگه خودش بود حرف بزنه پسرک از این ماموریت به وحشت افتاد چون بارها دیده بود وقتی یکی از جوجهها به طرفی میدوید بقیه‌ام به دنبالش می‌رفتن و بنابراین کنترل اونها کار سخت و دشواری بود پسرک ناراحت و غمگین شد و ترس همه وجودش رو دربر گرفت و با خودش گفت باید کاری کنم که هیچ اتفاقی برای جوجا نیفته وگرنه این دفعه از دست این زن و مرد ظالم جون سالم پدر نمی برم. و بعد فکر کرد برای در امان بودن جوجه ها اونا رو با ریسمانی به هم ببنده تا اونا نتونن از هم دور بشن و همین کار رو هم کرد. ولی اتفاق دیگه افتاد. چه اتفاقی؟ الان براتون تعریف میکنه. باز شکاری سر رسید و یکی از جوجه ها رو به چنگال گرفت و چون همه جوجه ها به هم بسته شده بودن باز شکاری همیه اونا رو با خودش برد و سر فرصت نوشه جان کرد ساعتی بعد زن ارباب از خانه همسایه برگشت و فریاد زد آهای آه پسر این جوجه ها کجان؟ اونا رو این دوره بعد نمی بینم وقتی متوجه ماجرا شد جیغی کشید و از حال رفت با جیغ زن ارباب سراسیمه سر رسید اونم وقتی از ماجرا خبر شد سخت عصبانی شد و پسر رو زیر مشت و لگد گرفت و تا تونست اونو کتک زد بیچاره پسر افسانه ای ما چه کتکی خورد؟ فردای اون روز ارباب به سراغ پسرک رفت و با عصبانیت گفت تو اونقدر کودن و عبلهی که من دیگه نمیتونم تو رو اینجا نگه دارم تو به درد هیچ کاری نمیخوری حیف نونا و غذاهایی که این مدت مفت از سفره ما خوردی پسر سکوت کرده بود و هیچی نمیگفت ارباب ادامه داد امروز باید از اینجا بری و بعد اون رو همراه یه سبد انگور و یه نامه نزد قاضی فرستاد پسر که چاره جز رفتن نداشت راه افتاد و رفت و رفت در بین راه از فرت تشنگی و گرسنگی دو خوش از انگورها رو خورد و بعد به راه شده می داد رفت و رفت تا نزد قاضی رسید بعد از سلام نامه و سبد انگور رو به قاضی داد و گفت جناب غازی، این سبد انگور و این نامه رو اربابم هم برای شما فرستاده. قاضی غازی اول نامر خوند، بعد نگاهی به سبد انگور ها اینداخت، اونا رو شمرد و گفت مم مم. مم؟ پسر جان، دو خوشه از انگور کمه، درسته؟ پسر سرش رو پایین انداخت و گفت، بله قربان درسته، من توی راه، خیلی گرسنه و تشنه شدم و مجبور شدم دو خوشه از انگور رو بخورم منو ببخشید قربان قاضی سری تکون داد. و بعد نامهای برای ارباب پسر نوشت و توی اون درخواست انگور بیشتری کرد و بعد نامه رو به پسرک داد و گفت این نامه و انگورا رو برای اربابت ببر پسر با نگرانی گفت ولی قربان اون گفته دیگه به اونجا بر نگردم تازه اگه بفهمه من دو خوش از انگوره رو خوردم حسابی عصبانی میشه و منو کتک میزنه قاضی گفت نگران نباش پسر جان اون کاری به کارت نداره حالا زودتر برو که داره دیرت میشه پسر نامه و سبد انگورها رو برداشت و راه افتاد به طرف خونه اربا درباب سبد انگور رو پر کرد و دوباره نامه ای نوشت و پسرک به نزد غازی رفت پسرک ای ما باز هم در بین راه احساس تشنگی و گرسنگی کرد و این بار هم دو خوش از انگورها رو خورد اما این دفع قبل از اینکه به حضور قاضی شهر برسه نامه رو از سبد انگور بیرون آورد و اونو زیر سنگی پنهون کرد تا کسی اونو نبینه و از کاری کرده با خبر نشه با این حال قاضی متوجه شد و اون رو به خاطر انگورهای خورده شده سرزنش کرد پسر با تعجب پرسید قربان من من که رو به شما ندادم پس شما از کجا فهمیدید قاضی از سادگی پسرک بخند افتاد بعد نامهای به ارباب پسرک نوشت و به اون توصیه کرد که با پسرک یتیم بهتر رفتار کنه و اون رو گرسنه و تشنه نگه نداره وگرنه خودش شخصا فرق بین عدالت و بی رو به ارباب یاد میده. قاضی نامه رو به دست پسرک داد و اون رو روانه خونه ارباب کرد. پسرک افسانه ما که هنوز میترسید و نگران بود درش نمیخواست نزد ارباب برگرده. چون به خلق و خوی ارباب و زنش آشنا بود اما چاره ای جز رفتن نداشت بنابراین به طرف خونه اربابش به راه افتاد وقتی پسرک به خونه اربابش رسید زن ارباب با دیدن پسرک غرولندکنان کنان گفت بازم سر کله این پسره بیارزه پیدا شد خدای من بعد با صدای بلند شوهرش رو صدا زد و گفت آهای مرد بیا ببین کی اومد تا که گفته بودی دیگه نون مفت نداری به این پسرک دست رو پا چلفتی بدی اه! با صدای زن ارباب از توی اتاق بیرون اومد و با دیدن پسرک با عصبانیت گفت تو اینجا شکار میکنی ها؟ مگه نگفتم دیگه حق نداری اینجا بیای پسرک با ترس و لرز جلو رفت و نامی غازی رو به اربابش داد و گفت ارباب این؟ این نامه رو جناب قاضی داده ارباب با خشم نامه را از پسرک گرفت و شروع کرد بخونن. و ارباب بعد از خوندن نامه با عصبانیت گفت مم. من خودم فرق عدالت و بی عدالتی را یادت میدم اگه دلت میخواد غذا بخوری باید خوب کار کنی و اگه کاری رو اشتباه انجام بدی باید با یک کتک مفصل تاوانش رو پس بدی این معنی عدالت و بی عدالتیه فهمیدی؟ پسر که بیچاره سرش رو به دستیق تکن داد و گفت بله عربا بله فهمیدم روز بعد ارباب وظیفه سختری به پسرک معول کرد این بار پسرک می بایست چند بسته بزرگ کاه رو برای عصبهای ارباب خورد می ارباب با لحن تهدیدآمیزی گفت خوب گوشاتو باز کن ها؟ من میرم کمی استراحت کنم و چند ساعت دیگه میام سراغت. و اگه تمام این کاهها رو تا اون زمان خورد نکرده باشی اونقدر کتکت می که نتونی؟ قدم از قدم برداری فهمیدی یا نه؟ بعد از این نطخ طولانی ارباب رفت تا کمی استراحت کنه و چیزی به جز یه تک نون کچیک برای پسرک باقی نگذاشت پسرک با عجله پشت دستگاه کاه کن نشست و با همه توان مشغول خرد کردن بسته های کاه شد طوری که بهزودی از شدت گرما عرق کرد بنابراین کتش رو درآورد و اون رو به گوشه ای روی کاه ها انداخت و بعد از ترس اینکه مبادا به موقع کارش به پایان نرسه تندتر و تنتر مشغول کار کردن شد و طوری بدون اینکه خودش متوجه بشه کتش رو هم به همراه توده ای از کاه به داخل دستگاه انداخت و تمام اون کت ریش ریش شد پسرک خیلی دیر متوجه این ماجرا شد و دیگه کاری از دستش بر نمی کت پاره پاره شده رو به هیچ وجه نمیشد واستپیره کرد. به با ناراحتی فریاد کشید. خدای من، خدای من. من چیکار کردم؟ جواب ارباب رو چی بدم این دفعه دیگه؟ کار من تمومه. کار من تمومه. ارباب که بی خودی منو تهدید نکرده. اون وقتی برگرده و ببینه که چیکار کردم تو سرحد مرگ منو کتک میزنه. شاید هم منو با دستاش فکر کنه بعد پسرک تصمیم گرفت از اونجا فرار کنه با خودش گفت بهتره بهتره هرچه زودتر از اینجا برم آره این بهترین کاره خدای من دیگه نمیتونم کتک ارباب رو تحمل کنم و از پشت دستگاه کاخورد کن بلند شد نگاهی به بسته های بزرگ کاه انداخت هنوز مقدار زیادی از اونا باقی مونده بود پسر با قدم لرزن لرزون به راه افتاد طرف حیات نگاهی به داخل خونه انداخت زن ارباب توی آشپزخونه در حال درست کردن غذا بود و آهنگی رو زیر لب زمزمه می کرد. پسرک داشت با قدم های آروم از اونجا دور میشد که یه دفعه به یادش اومد که چند روز پیش زن ارباب بهش گفته بود آای پسر. من اون گوشه ی یه شیشی زهر نگه داشتم برای این موشه موزی مبادا به اون نزدیک بشیم پسرک با خودش گفت خدایا من که جایی ندارم برم کجا فرار کنم بهتره برم و از اون زهر بخورم و خودم راحت کنم و بعد به گوشه حیاط رفت شیشه رو پیدا کرد و اونو تا ته خورد بعد با خودش گفت خیلی عجیبه مردم میگن مرک تلخه ولی به نظر من خیلی هم شیرینه حالا چرا پسرک که ما این حرف رو زد چند ثانیه به آهنگی که زن ارباب زمین کرد گوش بدین تا بعد دلیلش رو براتون بگم پسر افسانه ما بعد از خوردن محتویات داخل شیشه احساس کرد مرگ برخلاف عقیده مردم خیلی هم شیرینه ولی حقیقت امر این بود که اون شیشه شیشه زهر نبود بلکه شیشه اصل بود و زن ارباب به خاطر اینکه پسرک از اون نخوره به دروغ گفته بود اون شیشه شیشه زهره بگذریم پسر بعد از خوردن محتویات شیشه رفت روی چهارپایه نشست و منتظر مردن شد اما به جای اینکه احساس ضعف و سستی کنه حس کرد با خوردن محتویات شیشه جون ای گرفته بعد با خودش گفت اه چرا من نمیمیرم؟ من که تموم اون زهر رو خوردم شاید این مقدار زهر برای مردن کافی نیست مثلا شاید این زهر نبوده ولی ولی اگه این زهر نبوده پس اون سمی که ارباب گفته بود برای حشرات کنار گذاشته حتما حتما سمه. آره اون دیگه یه سم واقعیه و منو از فو در میاره و از دست ارباب و زنش نجات میده. پسرک با گفتن این حرف آروم و بی‌صدا وارد اتاق که گوشه ی حیات شد و محتویات داخل شیشه رو سر کشید اما اینم سم نبود. بلکه شربت سکنجبین بود کرباب از دست اون پنهان کرده بود پسر با خوردن شربت گفت واقعا تعم و مرک خیلی شیرین و خوشمز است و کم کم احساس کرد سرش گیچ میره با خودش گفت آه مثل اینکه این داره اثر میکنه آه، باید،, باید خودم رو به حیات کلیسا برسونم برای خودم قبری پیدا کنم بعد پسرک همینطور که هزیان میگفت تلو تلو خوران به راه افتاد و به هر صورتی بود خودش رو به حیات کلیسا رسوند و داخل قبری که تازه هفت شده بود دراز کشید و منتظر مرگ شد و چند دقیقه بعد هم از هوش رفت حالا بشنوید از ارباب و زنش. زن ارباب توی آشپزخونه مشغول آب کردن مقداری کره توی یه ماهیتابه بود که یه دفعه روغنها در یه چشم هم زدن آتیش گرفتن. زن ارباب با دیدن شغله های آتیش فریاد زد. کمک؟ کمک؟ آتیش آتیش! یکی بهدادم به روز کمک ارباب؟ با شنیدن فریاد زنش سراسیم بلند شد تا ببینه ماجرا هاست چه قراره و دید که از طرف آشپزونه آتیش شعله وره و زنش در حالی که لباسش آتیش گرفته به این طرف و اون طرف میدوه ولی کاری از دست ارباب ساخته نبود و در عرض چند دقیقه آتیش به تمام خونه سرایت کرد و خود ارباب هم در حلقه ای از آتیش معاصله شد بله تمام ساختمون در ظرف چند ساعت سوخت و خاکستر شد و از زن و شوهر بدزاد در آتیش اعمال بدشون سوختن و خاکستر شدن اما اما چه بر سر پسر ها مام؟ پسرک افسانه ما که بعد از خوردن اون همه اصل و شربت سکنجبین مدتی از هوش رفته بود بعد از چند ساعت به هوش اومد و وقتی دید که مرگی در کار رن بوده به طرف خونه اربابش به راه افتاد و وقتی به اونجا رسید دید که همه چیز خاکستر شده و اهالی دهکده در اونجا جمع شده بودن و زن همسایه با دیدن پسرک با گریه گفت اون از دست خرابکاریایی تو خیلی حرص میکنه اون بهترین زنی بود که من توی عمرم دیده بودم شوهر بیچارش هم آدم محترمی بود آه خدای من من بهترین دوستم را از دست دادم و بعد با گریه به طرف خونش رفت به سرک لبخندی زد و گفت <تصفيق> شاید یه روزیاتیش به سراغ تو هم بیاد و بعد به سراغ قاضی رفت و همه ماجرا رو برای اون تعریف کرد و به حکم قاضی هر اونچه که از مال و اموال ارباب باقی مونده بود به پسرک یتیم افسانه ما رسید و پسرک با آرامش به زندگی خودش ادامه داد. افسانه ارباب و پسرک یتیم برگرفته از کتاب بهترین افسانه‌های دنیا اثر برادران گریم رو با ترجمه از هروس شبانی براتون نقل کردم. افسانه‌های ملل مختلف به روشنی نمایانگر خصوصیات ملی و قومی مردمان که در اونها از آداب و رسوم و فرهنگ و سنت های ملل انعکاس داره. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده زینت سالحبور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار شیما کمیلیزاده شایی کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدرود